به جواب پدرش اینطور میگه بدو گفت رستم که این مرد پیر سخنها بر این گونه آسان مگیر به مردی مرا سال بسیار گشت بدونی که چندی به سر برگذشت اگر من گریزم ز اسفندیار تو در سیستان کاخ و گلچن مدار چون من ببر پوشم به نبرد سر هور و ماهندر آرم به گرد ز خواهش که گفتی بس به دو بدو دفتر کهتری خواندم همین خار گیرد سخنهای من بپیچد سر از دانش و رای من گر اون سرز کیوان فرو داردی روانش بر من درو داردی از اون نیستی گنج و گوهر دریغ نه برگستوان و نه گوپال و تیق سخن چند گفتم به چندین نشست ز گفتار با دست ما را به گریدون که فردا کند کارزار دل از جان او هیچ رنجه مدار یه طرف کارزار چون که قبلا ارز شد پیش پیشبینی میکنه که اگه تو کشته بشی اینطور میشه اگر او کشته بشه چطور میشه حالا رستم در جواب میگه تو از کشته شدن او هیچ نگران نباش من رست کشتن او رو ندارم در جنگ گریدون که فردا کند کارزار دل از جان او هیچ رنجه مدار نپیچم به آورد با او انان نه گوپال بیند نه زخم سنان ببندم به آورد راه اوی به نیرو بگیرم کمرگاه اوی زباره به آغوش بردارمش به شاهیز گشتاس بگذارمش بیارم نشانم بر تخت ناز از آن پس گشایم در گنج باز شو مهمان من بوده باشد سروز چهارم چو از چرخ گیتی فروز بی چادر لاجورد پدیداید از جام یا زرد سبک باز با او ببندم کمر و هم سوی گشتاس سر نشانمش بر نام بر تخت آج نه هم بر سرش بر دل روز تاج ببندم کمر پیش او بندهوار نجویم جویم جداییز استندیار به نظر زال هم که دنیا دیده و سرد و گرمی بسیار چشیده است این خیال بافی رستم بسیار بچگانه میاد و میگه بابا جون مثل اینکه تو هم درست حالا هوای کار رو نمیدونی و کارو خیلی آسون گرفتی. که بغلش کنی وردری بیاری اینجوری رو تخت بگذاری میگه که بخندید از گفت او زال زر زمانی بجنباند زندیشه سر بدو گفت زالی ای پسر این سخن مگو و جدا کن سرش را زبون که دیوانگان این سخن بشنوند بدین خام گفتار تو نگروند قبادی به جایی نشست دوژم نتخت تخت و کلاه و نه گنج و درم تو با شاه ایران برابر مکن سپهدار با راوی و گنج کن چو اسپندیاری که فقفور چین نویسد همین نام او بر نگین تو گویی که از باره بردارمش، به بر بر سوی خان زال آرمش نگوید چنین مردم سال خرد به گرد در ناسپاسی مگرد گفتین و بنهاد سر بر زمین همی خاند بر کردگار آفرین زال سر رو میذاره به زمین و دعا میکنه میگه خدایا تو این بد رو از ما بگردان برای اینکه هر جور که نگاه میکنه میبینه که اوضاع اصلا خوب نیست فردا صبح رستم سلاح میپوشه و حاضر و آماده میاد چون قرار به جنگ بوده اگر خاطر دوستان باشه و اسفندیار رو به جنگ می تلوید. روز رستم به فوشید گبر نگهبان تن کرد بر گبر ببر همون خفتان ببر بیان رو کمندی به فتراک زین بر ببست بران باره پیل پیکر نشست. بفرمود تا شد زواره برش فراوان سخن راند از لشکرش بدو گفت رو لشکرارای باش کوهی بر کوه ریک برپای باش. سند اگر خاطرتون باشه سوار زیادی همراه نداشت یه ستایی بیشتر سوار نیاورده بود کم بود رستان هم یه اددی از مردان خودش رو با زواره بر میاره ولی به برادرش میگه که تو همینجا باش و از اینجا تکون نخور ما اگر جنگی هم داشته باشیم دوتایی خودمون با هم داریم و من نمیخوام کسی چه از ایرانیان چه از اهل سیستان در این جنگ دخالت کنه و کشته بشه بنابراین تو اینجا باش تا ببینیم که سرنوشت من چه میشه بعد هم اینطور میگه به زواره چنین گفت پس با زواره به راز که مردیس این بدرگ دیو ساز به که با اون نیارم زدن رستمم نگرانه که حریف استندیار نشی بترسم که با او نیارم زدن ندانم که از این پس چه شاید بودن تو اکنون سپه را همی در بدار شوم تا چه پیش آورد روزگار اگر تند یا بمش همزان نشان نخواهم ز زابل ستام سرکشان به تنها تنخیش جویم نبرد زلشکر نخواهم کسی رنجه کرد کسی باشد از بخت پیروز و شاد که باشد همیشه دلش پرزد داد آمد از لب رود رفت بالا و اسفندیار رو صدا کرد خروشید که ای اسفندیار هماوردت آمد بر آرای کار <متحدث> <متحدث> چو بشنید اسفندیار این سخن از آن شیر پرخاش جوی کهن بخندید و گفتی نه که آراستم بدان که از خواب برخواستم. بفرمود تا جوشن و خود اوی همان ترکش و نیزه جنگ جوی ببردند و پوشید روشن برش نهادان کلاه بر سرش بفرمود تا زین برصف سیاه نهادند و بردن نزدیک شاه اینجا صحنه دیگری از پهلوانی و زورآوری و جوانی اسفندی رو نشون میده میفرمد فردوسی که چو جوشن به پوشید جوی ز زور و ز شادی که بودند در روی نهادان بن نیزه را بر زمین ز خاک سیاه اندر آمد به زین مثل پرشه با نیزه میگه بون نیزه شو به زمین گذاشت و به او تکی کرد و نشست روی زین بدون اینکه پاشو به رکاب بیاره و اینا به پلنگی که بر پشت گور نشیند برانگیزد از گور شور سپه در شگفتی فروماندند بر آن نامدار آفرین خواندند همین شد چون از ده رسید مرو را بران باره تنها بدید باره به معنی اسبه دید رست هم, هم تنها اومده در اونجا پس از بارگی با پشوتن بگفت که ما را نباید دو یار و جفت هم سر اسب به پشوتن گفت که چون او تنها آمده ما هم یار جفتی نمیخوایم و من تنها میرم با رستم نبرد بکنم چون تنهاست ما نیز تنها شویم ز پستی بران تند بالا شویم بران گونه رفتند هر دو به رزم تو گفتی که اندر جهان نیست بازم چون نزدیک گشتند پیر و جوان دو شیر سرافراز و دو پهلوان خروش آمد از باره هر دو مرد دوباره اسبا شیه کشیدن تو گفتی بدر رید دشت نبرد باز رستم اینجا حالا آمده جنگ کنه ها ولی اول در آشتی میزنه اول باز دوباره همون حرفا رو میزنه که ای شاهزاده سرتو از فرمان دیو بیرون کن و دل از جنگ بردار چنین گفت رستم به آواز سخت که ای شاه شادان دل و نیک بخت. از این گونه مستیز و بد را مکوش سوی مردمی یاز و بازار هوش. اگر جنگ خواهی و خون ریختن بر این گونه سختی براویختن بگو تا سوار آورم زابولی که باشند با خنجر کابلی، میگه اگه تو خیلی میل خون ریختن داری بگو من ست سوار زابولی میارم تا هم سواراتو بیار اینا بزنن همدیگرو رو بکوشن اگه دوست داری که جنگ تماشا کنی و خون ریزی تماشا کنی من بیارم این کارو بکنی خودت نیاب جنگ اسفندیار که منتظر نبوده که رستم نصیحتی چیزی بکنه بهش بر میخوره و میگه تو آمدی به جنگ آمدی باز منو فریب بدی و حرفای بیهوده بزنی من به خون ریختن کسی راضی نیستم و دور باد که رسم آیین من این باشه کسان دیگر آزار بکنم من خودم جنگ میکنم حالا یه چند بیتی از این مطلب باز عرض می کنم. چون این پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی چنین نابکار؟ کار. به شبگیر برخواستی. میگه صبح سحر از کاخ خودت بیرون آمدی. از این تند بالا مرا خواستی. چرا ساختی بند و مکر و فریب. همانا بدیدی به تنگی نشی. چه باید مرا جنگ زابلستان ستان. بگر یعنی ویا. وگر جنگ ایران و کابل مبادا چنین هرگز آیین من سزا نیست این کار در دین من بالاخره میگه توی جنگ جوی و منم جنگ بگردیم با یکدیگر دگر بی سپاه باز تا بیت جاویدان فردوسی اینجاست توی جنگ جوی و منم جنگ بگردیم یک بادگر دگر بی سپاه ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرایت همی بیسوار و وگر باز یعنی و یا وگر باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی بعضی از اهل ادب در این دو بیت هم باز تصور کردن که فردوسی برتری رستم رو به اسفندیار نشون میده میگه اسب اسفندیار اسب بیسوار میاد به طرف آخر اما باره که یه لغت عدبی تر و مرتب تر یا اینکه باره رستم به ایوان یعنی کاخ رو می بی خداوند یعنی القاب و آداب و ترتیبی که فردوسی در این دو بیت به کار برده اونچه در شعن استندیار میگه با اون چه در شعن رستم میگه با هم دیگه تفاوت داره. به هر حال نهادن پیمان دو جنگی که کس نباشد بران جنگ فریاد رس شروع کردند به جنگ خودشون و قرارم گذاشتن که هیچ کس دیگه در این جنگ دخالت نکنه نخستین به نیزه براویختن همین خونز جوشن فرو ریختن چنین تا سنانها به هم برشکه هست به شمشیر بردن ناچارده دست به آوردگاه گردن افراختند چپ و راست هر دو همیتاختند ز نیروی اسبان و زخم سران شکسته شدند تیغهای گران نیزه ها شکسته شد شمشیرم شکسته شد چو شیران جنگی برا شوفتند پر از خشم اندام ها کوفتند همان دسته بشکست گرز گران فرو ماند از کار دست سران از گرز هم مرادی حاصل نشد انقدر به کار بردن تا گرز هم شکست گرفتن زانپست دوال کمر کمر همدیگر گرفتند که زور دستشون نشون بدن به هم گرفتند زانپست دوال کمر دو به تکاور فرو برده سر همی زور کرد این بران آن برین نجنبید یک شیر بر پشت زین پراکنده گشتند زاوردگاه قمی گشته اسبان و مردان تباه کفن در دهانشون شده خون و خاک همه گبر رو برگستوان چاک چاک اینجا به قول نقالا رستم و اسفندی رو در این جنگ و در این درگیری داشته باشیم یک حادثه ناگزیر بسیار بد دیگر اتفاق میافته که باز یک قدم این دو جنگجو رو به طرف سرنوشت حتمی خودشون نزدیک کرد. میده به برادرش زواره گفته بود که تو همینجا نزدیک کوه باش و جلو نرو اسندیارم هم سواران خودش رو گذاشته بوده اون طرف اینا بدون اینکه روح رستم اطلاع داشته باشه زباره یه مقداری میاد جلو به خصوص وقتی میده که طول کشید و خبری از رستم نشد یه نگران هم میشه میاد اونجا و به اینا شروع میکنه به بدگویی کردن جدال لفظی کم کم تبدیل میشه به جدال اصلی و خلاصه درگیری دوتا سپاه با هم من چند تا بیتشو از خود گفتار استاد توس میخونم بدان گه که رزم یلان شد دراز همی دیر شد رستم سرفراز زواره بیاوردزانسو سپاه یکی لشگری داغدل کین به ایرانیان گفت رستم کجاست؟ در این روز بیهوده خاموش چراست؟ شما سوی رستم به جنگ آمدید خرامان به چنگ نهنگ آمدید همی دست رستم نخواهید بست بر این رزم گهبر نشاید نشست زواره به دشنام لب برگشاد همی کرد گفتار ناخوب یاد شروع کرد به دشنام دادن به اینا براش آن پور اسفندیار ست پسر اسفندیار آورده همراه خودش یکی بهمنه پسر بزرگترش که بعد هم به جای اسفندیار می نشینه یکی دیگه به نام نوشازر و دیگری به نام مهرنوش این دوتا در این جنگ گرفتاری پیدا می بر از آن پور اسفندیار سواری بود از پفکن و نامدار جوانی که نوشازرش بود نام سرافراز و جنگاور و شادکام بر با سگزی آن نامدار زبان را به دشنام بکشاد خار چنین گفت کاری گوه برمنش به فرمان شاهان کند بدکنش نفرمود ما را یل اسفندیار چنین با سگان ساختن کارزار که پیچد سر از رای و فرمان او که یارت گذشتن ز پیمان او اگر جنگ بر نادرستی کنید به کارن در اون پیش دستی کنید ببینید پیکار جنگ به تیغ و سنان و به گرز گران گفت اسفندیار به ما دستور داده که پیش دستی نکنیم گفته که با سگان جنگ نکنید یعنی دشنام در حیران میگه ولی شما اگر پیش دستی بکنید و بیاد اون وقت میبینید که ما چه رفتاری با شما داریم زوارم هم که اوقاتش ترخون فرمون میده که خب بزنید اینا رو زباره به فرمود کندر نهید اندر نهید یعنی شمشیر بذارید تو اینا به فرمودم یعنی دستور داد فرمان داد. زواره بفرمود کندر نهید سران را ز خون بر سر افسر نهید زواره بیامد به پیش سپاه دهاده ده برامد ز آوردگاه ده و دهید هم به معنی بزنید و بکشید دهاده یعنی بزن بزن کشدار. زواره بیامد به پیش سپاه دهاده ده برامد ز آوردگاه بکشتند زیرانیان ایرانیان مقصود امراهان اسفندیاره البته اینا مال زابرستان، سکزیانه به اصطلاح. بکشتن زیرانیان بیشمار چون نوشازران دید برساختکار سمند سرفراز را برنشست بیامدی که تیغ هندی به دست یکی نامبر بود، الوای نام سرفراز و اسپفکن و شادکام کجا نیزه رستم او داشتی؟ پس پشت او هیچ نگذاشتی شخصی بود به نام الوا که نیزدار رستمه این در مجالس نقالی هم. الوا به نام نیزدار رستم شناخته میشه الوا اینجا بوده رستم تنها رفته بوده با اسفندیار به جنگ الوا در این جنگ بوده چه از دور نوش رو را بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید یکی تیغ زد بر سر و گردنش به دو نیمه شد پیل پی تنش الوا رو کشت زواره برادر رستم برانگیخت اسب نبرد به تندی به نوشازر آواز کرد که او را فکندی کنون پایدار چو البای را من نخانم سوار زواره یکی نیزه زد بر برش به خاکندر آمد همان گه سرش اولین پسر اسپندیار به دست زواره کشته شد چو نوشازر آن نام بر کشته شد سپر همه روز برگشته شد برادرش یعنی مهرنوش گریان و دل جوش جوانی که بود نام او مهرنوش غمی شد دل مرد شمشیر زن برنگیخت آن باره پیلتن برفت از میان سپه پیش صف زد درد جگر بر لبا آورده کفت و آن سو فرامرز چون پیگل مست بیا اومد یکی تیغ هندی به دست ویخت با او همین مهرنوش دروی زلشکر برآمد خروش گرامی دو پرخاش جوی جوان یکی شاهزاده دیگر پهلوان چو شیران جنگی براش افتند همی بر سر یکدیگر کوفتند، اما مهرنوش که حریف فرامرز نبود فرامرز پهلوان دریجه است در آورگه تیز شد مهرنوش نبودش همی با فرامرز توش بزد تیغ برگردن اسب خیش دستباچه شد اشتباه کرد بزد بر برگردن اسب خویش سر باد پاینده رفتند پیش فرامرز کردش پیاده تباه زخون لل شد خاک آوردگاه این یکی هم وقتی پیاده موند فرامرز او را هم کشت و تموم شد چو بهمن پسر بزرگ چو بهمن برادرش را کشته دید زمین زیر او چون گل آقشته دید بیامد دوان نزد اسفندیار حالا مشغول جنگ رستم و اسفندیار با هم بی آمد دوان نزد اسفندیار به جایی که بود آتش کارزار به دو گفت که این نر شیر جیان. سپاهی به جنگ آمد از سگزیان دو پورتو نوشازر و مهرنوش به خاری به سگزی سپردند هوش یعنی کشته شدن تو اندر نبردی و ما پرز درد جوانان و کیزادگان زیر گرد بر این تخمه این ننگ تا جاودان بماند زکردار نابخردان خب اسفندیار وسط جنگ خبر کشته شدن دوتا پسرش هم بهش میدن دل مرد بیدارتر شد خشم پر از تاب مغز و پر از آب چشم به رستم چنین گفت که بد نشان چنین بود پیمان گردم کشان تو گفتی که لشگر نیارم به جنگ تو را نیست آرایش ناموننگ؟ نداری من شرم وز نترسی که پرسند روز شمار؟ ندانی که مردان پیمان شکن ستوده نباشد بره انجمن، دو سگزی دو پور مرا کشتند بران خیرگی باز برگشتند رسام منزه اسفندیار ناراحت میشه بر اینکه هیچ چنین قصدی نداشته و این باز ماده که نه رو سختتر میکنه چون بشنید رستم غی گشت سخت. بلرزید برسان شاقه درخت. به جان و سر شاه سوگند خرد، به خورشید و شمشیر و دشت نبرد که من جنگ هرگز. نفرمودم کسی که این چنین کرد نستودم ببندم دو دست برادر کنون گروه بود اندر بدی رهنمون فرامرز را بسته دو دست بیارم بر شاه یزدان پرست به خون گرانمایگانشان بکش مشهوران از این رای بیهوده هوش میگه دستشونو میبندم میارم بد کردن بکششون ولی اسفندیار پر از خشمه چنین گفت با رستم اسفندیار که بر کین تاووس نر خون مار بریزیم ناخوب و ناخوش بود نه نا این شاهان سرکش بود میگه من در مقابل خون تاووس دوتا مار رو بکشم یعنی این کسان تو ارزش این رو ندارن که به خون پسران من گشته بشن توی بد نشان چاره خیش ساز. که آمد زمانت به تنگی فراز چند بار عرض کردم که زمان به معنی مرگه میگه تو فکر خودت باش برای اینکه خیلی عجلت نزدیک شده و تنگ شده پلوت یعنی میرسه به زودی بر رخش با هر دورانت به تیر برا میزم اکنون چو با آب شیر رون تو رو با پهلوی رخش به هم میدوزم بدان تا کس از بندگان زین سپس نجویند کین خداوند کس وگر اگر ببندم چنگ به نزدیک شاهت برم بیدرنگ بدو گفت رستم که از این گفتگوی چه باشد مگر کم شود آبروی به یزدان پناه و به یزدان گرای که اوست بر نیک و بد رهنمای ولی جنگ ادامه داره ارز کردم که از نیزه و شمشیر و گرز و گرفتن کمر یکدیگر مرادی حاصل نشده میان سراغ تیر و کمان کمان برگرفتند و تیر خدنگ ببردند از روی خورشید رنگ ز پیکان همی آتش افروختند به بربر زره را همی دوختند دل شاه ایران بدان تنگ شد بروها و چهرش پراجنگ شد چو او دست بردی به سوی کمان نرستی کس از تیر او بیگمان به تیری که پیکانش الماس بود زره پیش او همچه قرتاس بود چو او از کمان تیر بکشات شست تن رستم و رخش جنگی بخست. بر رخش از آن تیرها گشت سست نبود باره و مرد جنگی درست همی تا بر اسفندیار نیامد بر او تیر رستم به کار ببینید اینجا باز یه جای حساسه که مسئله رو این تنی مطرح میشه فردوسی سعی میکنه به یه نحوی مطلب رو شرح بده که هیچ تصریحی به روح این تنی طرف نکنه و اگر جاییم میگه که مثلا شمشیر کار نکرد میگه شمشیر بر زره او یا به خود او کار نکرد نه به پوست تن او حالا اینجا همین مسائل بسیار به صورت دقیقی مطرح میشه همین تاق بر گردش اسفندیار نیامد رو تیر رستم به کار فرود آمد از رخش رستم باد سر نامبر سوی بالانه هاد. همان رخش رخشان سوی خانه شد چنین با خداوند بیگانه شد زخمی شد کرد خداوندشون به بالا یعنی سربالایی زرستم همی رفت خون به شد سست و لرزان كه 20